لشکر از پهلو آمد بدشت که از گرد ایشان هوا تیره گرشت این پهلو رو در اینجا مرحوم دکتر موئین در فرهنگش می نویسد که اصلا به معنی قوم پارت قوم عشقانی است و در عهد ساسانی به رؤسای خاندانهای قارن و سوگرن و اسپاهبد که از نژاد اشکانیان بودند اطلاق می شده. و یعنی اینها رو میگفتن که سوران پهلاو یا قاران پهلاو و بعد این به شهرهاییم که با این اقوام اقوام اشکانی ارتباط داشته این اطلاق میشده شده ولی بعدها به کلی پهلاو به معنی شهر گرفته شده وقتی فردوسی در شاهنامه پهلاو رو به کار میبره به معنی شهره یه شاهد دیگری هم آورده مرموم و این در فرهنگش که بنده خدمتتون میخونم میفرماید از ایران هران کسی که گبزاده بود دلیگ و خردمند و آزاده بود بفرمود تا جمله بیرون شدند ز پهلو سوی دشت و حامون شدند حالا برویم به کار سهراب و بزم سهراب و جندرزم فردوسیم فرماید که صحراب مدتی در بزمش نشست ولی خبری از از نشد زمانی همی بود صحراب دیر نیامد به نزدیک اون زنده شیر نگه کرد صحراب تا زندرزم کجا شد که جایش تویی شد زبزم برفتند و دیدند افگنده خار براسوده از بزم و از کارسار خروشان از آن جای باز آمدند شگفتی فرومنده از کار زند به سهراب گفتند شد زنده از سر آمد بر او روز پیکار و بز همون گهچو بشنید برجه سود بیامد بر زند برسان دود شگفت آمدش سخت و خیره به ما دلیران و گردنکشان را بخاند چون این گفت که شب نباید غنود شب همی تیق باید بسود که گرگ آمدن در میان رمه سگ و مرد را دید گاه دمه دمه یعنی عبر و مه. اگر یار باشد جهان آفرین چون نهل سمندن به زمین ز فطراک زین برگ و شایم کمند بخواهم از ایرانیان کینه زند بی آمد نشست از برگاه خیش گران مایگان را همه خاند پیش که گر کم شد از پیش من زند رزم نیامد آمد همون سیر جانم زبست جوان دیگه به ارتضای جوانی و نیروی پایان ناپذیر جوانی بیگه حالا او که کشته شد از میون رفت ولی جان من که از بزم سیر نشده دنباله بزمش رو ادامه میده از اون طرف رستم چو برگشت رستم بر شهریار از ایران سپه گیب بود پاسدار به رهبر گوه پیلتن را بدید بزد دست و تیغ از میان برکشید یکی برخروشید چون پیل است. سپر بر سر آورد و بنمودده است بدانست دانست رستم که سپاه به شب گیب باشد تلایه برا به خندی دوزان پس فقان برکشید تلایه چو آواز رستم شنید پیاده بیامد به نزدیک اوی به دو گفت که مهتر جنگ جون پیاده کجا بوده ای تیر شب تهمتن به گفتار بکشاد لب به گفتش به گیوان کجا کرده بود آن کجا یعنی آن که؟ کجا آن یکه؟ بگفتش به گیب آن کجا کرده بود چنان شوشی چنان چیر مردی که آورده بود وزان جاگه رفت نزدیک شاه سه ترکان سخن گفت و از بزمگاه ز سهراب و از بالا او ز بازوی و کتف و بر و او که هرگز ز تورکان چونو کس نخواست به کردار سر است بالاش راست به توران و ایران نماند به کس تو گویی که سام سوار است و بس وزان مشت برگردن زنده زند رزم که از این پس نیاید به رزم و به بس بگفتند و پس رود و می خواستند همه شب همی لشکر آراستند هر دو طرف میرن به آراستن وزم و فقط این وسط جندرزم بیچاره کشته میشه و عجب این است که رستم با اینکه اینجا همین همین شب با اولین دیدار حس میکنه که هرگز از ترکان چنین کسی برنخواسته و هم میبینه که به هیچ کس این جوان تازه رسیده به هیچ کس جز سام سوار ماننده نیست ولی باز ذهنش متوجه این نمیشه که این همون پسر منه و هر حال قضا آمده بود روز بعد سپاهیان که میان سهراب حجیر پسر گودرز رو در بند خودش داشته و فکر میکنه که نشان یکی یکی سرداران سپاه رو از حجیر بخواد دلیل اصلی راه بردن به وجود رستم و به دلایلی که بعد خواهیم گفت رستم هم یعنی کسانی هم که سهراب نشان رستم رو از اونام میخواسته هر کدوم برای در خودشون پنهان میکردن این مطلب رو حتی خود رستم و هر حال داستان به این ترتیب شروع میشه فردا چو خورشید بنداخت زرین کمند زبان برآمد آمد به چرخ بلند زبانه ونی شعله آتش کلمه عربی است به معنی شعله آتش چو خورشید بنداخت زرین کمان زبان برآمد به چرخ بلند بپوشید سهراب خفتان جنگ نشست از بر چرمه خوب رنگ اینجا باید ارز بکنم با اینکه عرض کردم قبلا خفتان عبارت بوده از جامعه معمولا ابریشمی کلफ्टी که زیر زره می‌پوشیدند برای اینکه از تماس زره آهنی با بدن جلوگیری بشه و در زیر تابش آفتاب اینا زره بدن رو نسوزونه و این پارچه های عبری شمی بسیار هم مقاوم بوده به طوری که گاهی شمشیر زره رو می ولی خفتان رو نمی ببره رستم خفتانی داشته که ظاهرا از پوست سگ آبی بوده و معروف بوده به خفتان ببر بیان و میگفتند که سلاح به اون خفتان کار نمی کرد. هر حال همه جنگاوران زیر جوشنشون، زیر سرهشون باید خفتان بپوشن. سهراب هم همین کار کرد. بپوشید سهراب خفتان جنگ، نشاست از بر چرمه خوب رنگ. چرمه هم یکی از لغتهای است که برای اسب عصب، یعنی اسبه به کار میره. پرنداو افکنده رفگنده در برش پرنداور به معنی شمشیره پرنداو افکنده در برش یکی مقفر خسرووی بر سرش کمندی به فتراک بر شاست خم خمن در برو در برو کمندی به فتراک بر شست خم خمن در برو روی کرده دو جام این شهست هم یعنی کمند شهست تا تا میخورده بلند بوده نسبتا و فتراک یه جاییست در پشت زین که معمولا کمند رو یا اگر چیزی رو به کمند میبندن سیدی می‌گیرن چیزی میگیرن اونجا به فتراک زین آویزون میکنه بیا آمدی که تند بالا گزید به جایی که ایران سپهرا را بدید آمد یه جای سربالایی جایی که تمام سپاه رو میدید بفرمود تا رفت پیشش خجیر بدو گفت کجی نیاید تیر نشانه نباید که خم آورد سرفشان شود زخم کم آورد به هر کار در پیشه کن راستی چو خواهی که نگزاید کاستی سخن سخون هرچه پرسم همه راست گو به کجی مکن رای و چاره مجود ملازم فرمه که چاره معنی باز مکروهیل است معنی خوبی نداره چو خواهی که یابی رحاییز من سرف راز باشی به هر انجامن از ایران هرام چد بپرسم بگوی متاب از ره راستی هیچ روز سپارم به تو گنج آراسته بیابیز من خلعت و خواسته وریدون که کجی بود رای تو همه بند و زندان بود جای تو ایدون به معنی چنینه یعنی اگر چنین باشه که کژجی رای تو باشه جایت در زندان در زم نصیحت های میکنه که تیر باید راست باشه نشانه نباید خم بشه در هر کاری راستی پیش کن و این مساقی حجیرش چنین داد پاسخ که شاه هر هرچه پرسد سخند زان سپاه بگویم همه هرچه دانم به به کجی چرا بایدم گفته نبیمی جز از راستی پیشم به کجی نیارد دل اندیشم به گیتی به از راستی پیشه نیست به از راستی هیچ اندیشه نیست بدو گفت که از تو بپرسم همه ز گردن کشان و ز همه نامداران آن مرز را چو توس و چو گیب و چو گودرز را ز بهرام و از رستم نامدار ز هر که بپرسم به من بر شما این میگه و بعد میپرسه. اینجا اول نشان خیمه ها رو میده ها رو و رنگشون رو بعد نشان درفش هایی که بالای اون خیمه برپاست و وضع اون پهلوانی که اون چادره و میپرسه که اینا کی هستند؟ و اینجا نکات بسیار جالب توجهی داره از نظر اولا همین چادر پهلوانان جنگ و علم هایی که هر کدوم اینا داشتن با نقش های مختلف برای اینکه این نشان حالا یا خانواده شون بوده یا قبیله شون بوده یا نشانی بوده که اون پهلوان رو مشخص میکرده به اینا توجه بفرمایی که جوری مطرح میکنه سهراب چجور میپرسه و حجیر جور جواب میتونه صغراق میگوید که سراوق پرده دیبه از رنگ رنگ بدوین درون خیمه یه پلنگ دیبه یا دیبا پارچه ابریشمی کلفته و سرا و پرده از دو جزء سرا و پرده است سرا به معنی منزل پرده هم که پارچه است یعنی منزلی که از پارچه ساخته باشن طبیعی است که این از یه چادر ساده خیلی بزرگتره و مرکز سردار سالار پادشاه و امثال ایناست در میون اشایر هم مثلا چادر خان به این ترتیب سراپرده است. توش تقسیمات شده یه گوشش اتاق مهمان خانه است. محل پذیراییه یه گوشش اتاق خواب خانه با زن و بچهش یه قسمت دیگرش مثلا است و نظاهر اینها و مال پادشاه هم که دیگه بیشتر میگه ای هست دیوار رنگارنگ رنگ در او خیمه هایی هست با پوست پلنگ سراپرده دیبه رنگ رنگ به دویندرون خیمه ها و پلنگ به پیشندرون بسته صد زنده پیل یکی مهد پیروزه برسان نیل مهد اصلا معنی عنی است ولی اینجا به معنی تخت و به جایگاهه یکی برز خورشید پیکر درفش سرش ماه زرین قلافش بنمش میگه یه درفشی هست ارز یعنی بلند و اصطلاح باشکوه و, و خورشید پیکره روی درفش نقش خورشیده سرش یعنی سر چوب درفش سر چوب درفش هلال ماه با زر که غالبا شاید در دسته های ازاداری هم دیده اید که ماه چی بر سر علم میکنه. سرش ماه زرین قلافش بنشت به قلب سپاهندرون جای کیست ز گردان ایران برا نام چیست این مشخص ترین چادری بوده که در لشکرگاه ایران دیده می شد به دو گفت کان شاه ایران بود به درگاه او پیل و شیران بود چون این گفت از آن پس که بر میمنه میمنه یعنی سمت راست سپاه در این حال میمنه و میسره هر دو اصطلاح نظامی است به معنی اون بخشی که وسط سپاه رو میگفتن قلب اون چه در سمت راست قلب واقع میشد میمنه است و اون چه در سمت چپ واقع میشد میسره است و هر کدوم از اینا یه سردار و یه فرمونده داشتیم چون این گفت از آن پس که بر میمنه سوار است بسیار رو و پیل و بنه سراپردهی برکشیده سیاه رده گردشندر زهرس و سپاه به گردندرون خیمه زندازه بیش پس پشت پیلان و بالاش پیش زده پیش او پیل پی کرده رفش به دربر سواران زرین کفش پرده سیاه پیل هست خیمه دورش هست سواران زرین کفش هستند چون این گفت کان توس نوزر بود درفشش کجا پیل پیکر بود اینگه توسه که درفشش پیل پیکره یعنی نقش پیل روی درفشش هست بپرسید کان سرخ پرده سرای سواران بسی گردشندر به پای یکی شیر پیکر درفشی به زر درفشانگه کی در میانش گهر پس پشتشان در سپاهی گران همه نیزداران و جوشنبران دیگه نمیگه اون کیه چون این گفت کان آزادگان سپهدار گودرز کشوادگان گودرز کشوادگان اون گان پساوند نسبته یعنی گودرز فرزند کشواد این کلمه این, این گان در گروگان و در بازارگان که کمشم شده بازرگان آمده گروگان یعنی گرویی بازارگانم یعنی بازاری کشبادگانم یعنی فرزند کشباد بپرسید کان سبز پرده سرار یکی لشکری گشن پیشش به پای یکی تخت پرمای ی اندر میان زده پیش او اختر کابیان، زهر زه کس که بر پای پیشش برست نشسته به یک رش سرش برتر است. یکی بار پیشش به بالای او کمندی فروهشت تا پای او بر او هر زمان برخروشت همین، تو گفتی که در زین بجوشد همین. بسی پیک برگستوان بر پیش همین جوشدان مرد بر جای هیچ نه مرد است از ایران به بالای او نبینم همین هم همتای او درفشش پدید اژدها پیکر است بدان نیزبر شیر زرین سر است میگه این کیه این همون کسیست که مورد سؤال و مورد علاقه صحرابه یعنی این رستن سراپرده سبز تخت بزرگ قد و بالایی که نشسته یک سر از دیگران یک گرش یعنی از موچه دست تا آرنج بلندتر از دیگرانه عصبی همتای خود او دمه دربسته بسته مثل این از که در زمین داره میجوشه و هیچ مردی از ایران به قد بالای اون نیست و هیچ اسبی همتای اسب اون نیست. درفشش هم اجره ها پیکره و سر نیزه سر چوب درفش هم شیر زرین گذاشتن میگه این چیه؟ چونین گفت که از چین یکی نیکاه به نوبری رسیده است نزدیک شاه بپرسید نامش فر و خجیر به دو گفت نامش ندانم ز ویر بدین دز بودم من بدان روزگار کجا او بیامد برای شهریان میگه یه پهلوانیز تازه از چین آمده پیش پادشاه من اسمش رو نمیدونم در ذهنم نیست برای اینکه وقتی او آمد پیش شاه من در این دز بودم سهراب منتظر بوده که حجیر بگه این رستمه و گم شده خودش رو پیدا بکن ولی حجیر هم دلیل داره که این میگه برای اینکه فکر میکنه چون معتقد بوده که سهراب بسیار قوی و گردن کشه فکر میکنه که ممکن است رستم به دست سهراب در این جنگ کشته بشه ولی اگر سهراب او رو نشناسه ولو اینکه رستم کشته بشه افسانه رستم و یاد پهلوانی رستم کشته نمیشه و در نتیجه ایرانیان فرصت دارن که کمی دست و بال خودشون رو جمع کنن و حال اینکه اگر رستم رو بشناسه بعد از کشته شدن رستم دیگه ایران به باد رفته به این دلیل پنهان میکنه حالا خودشم میگه میرسیم به اونجا ولی اینجا عرض کردم منتظر بوده که بگه این رستمه و حجیر هم نمیگه قمی گست را دل بدان که جایی رستم نیامد نشان نشان داده بود از پدر مادرش همین دید و دیده نبود باورش همین نام جست از زبان حجیر مگر کان ها شود دلپذیر میگه که ناراحت شد برای اینکه نشانی های پدر رو داده بود مادرش به اون نشانی داده بود و میدید تمام اون نشونی که مادر داده بود میدید در این مرد و در این سراپرده صاحب این سراپرده جمعه ولی باور نمی‌کرد و می‌خواست نام رو از زبان حجیر هم بشنوه که دیگه صد در تأیید بشه ولی نوشته به سربرد گرگونه بود غذای ایزدی جور دیگه بود زفرمان نکاهد نه, نه هرگز بزرگ این سلام خود فردوسیست وزان پس بپرسید که از مهتران باقی سراپرده هاری میپرسید کشیده بر برکران یکی گرگ پیکر درفش از برش برآورده از پرده زرین سرش سواران بسیار پیشش به پای برایت همین ناله کرنای به دو گفت کان پور گودرز گیو که خانند او را همین گیف نیف ز گودرزیان مهتر و بهتر است بر ایران سپه بر دو سر افسر است بدو گفت از آن سو که تابندشید برایت تابندشید خورشید که از آن سویی که بر بیاد یعنی از مشرق بدو گفت از آن سو که تابندشید براید همی پرده بینم سفید ز دیبای روم ز پیشش سوار رده برکشیده فزون از هزار پیاده سپردار و نیزه وران شده از لشکری بیکران نشسته سپهدار بر تخت آج نهاده بر تخت کرسی ساج ساج اسم است که چوبش قیمتی بود زهودج پروهشت دیبا جلیل غلامی استاده رده خیل خیل جلیل کلمه عربی است جل با تشدید لام جل کلمه عربی است و جلیل یعنی جل کوچولو مسخرش میگه اونجا هودجی تخت روانی هست دی های دیبا از او آویزون غلامان زیاد ایستادن بر خیمه در پیش پرده سرای یکی ماهپیکر درفشی به پای میگه که درفشش هم ماهپیکر چون این گفت کورا فریبورز دان که فرزند شاه هست و تاج گوان فریبرز پسر کابوسه برادر سیاوش ولی بعد بعد از کابوس فریبورز به پادشاهی نمیرسه و فرزند سیاوش کیخسرو رو گیب از دوران میاره و به پادشاهی مینشونه در ایران ولی خب فریبور جز سردان لشکر و جز آدمای معتبر و بسیار آبرومند و شاهزاده نزدیک و فرزند شاه همیشه بوده زمان تا زمان لشکر از نزد شاه پیاده به پیشش همه با کلاه بپرسید کاند زرد پرده سرای به دهلیز چندی پیاده به پای به گردن درش سرخ و زرد و بنفش به هر برکشیده درفش درفشی سفید است پیکر گراز نقش گراز روشه در اینان قدیم گراز مظهر زورمندی و توانایی بوده البته به این ترتیبی که ما در دوره اسلام او رو مترود و منفور میدونیم به اون صورت نبوده درفشی سفید است پیکر گراز سرش ماه زرین به بالا دراز چون این گفت کورا گراز است نه که از جنگ شیران نتابد لگام هشیبا رو از تخمه گیگان که بر درد و سختی نگردد ژکان میگه از تخمه گیوه از نسل گیوه اسمش هم گرازه و از درد و سختی هم ژکان نمیشه ژکیدن به معنی غرغر کردن و ناله کردن و زاری کردن نشان پدر جست و با اونگ همی داشت آن راستی در نهفت تو گیتی چه سازی که خود ساخته است جهانبان از این کار پرداخته است میگه دنیا رو جور میخوای بسازی دنیا قبلا ساخته شده و خداوند از این کار پرداخته یعنی مقدر کرده هرچه باید باشه زمانه نبشته دگرگونه داشت چنان کو گذارت به باید گذاشت باید همون طوری که زمان مقدر کرده همونجور باید اتفاق بیفته دیگر باره دل راحت نمیشه که دیگر باره پرسید از آن سرفراز از آن کش به دیدار او بوت نیاز یعنی از رستم میگه تو از رستم چه حرفی نزدی از آن پرده سبز و مرد بلند او آن اسب و آن تاب داد کمان به پاسخ هجیر ستیهنده گفت که از تو سخون ها چه باید گر از نام چینی بمانم همی از آن است کورا ندانم همی میگه اگه اسمش رو نمیتونم بگم برای اینکه من نمیشناسم این مرد چینی رو بدو گفت سهراب که نیست داد ز رستم نکردی سخن هیچ یاد میگه نه این درست نیست تو هیچ از رستم اصلا حرفی نزدی کسی کو و پهلوان جهان میان سپهدر در نماند نهان. تو گفتی که بر لشکر او مهتر است نگهبان هر مرز و هر کشور است چون این داد پاسخ مرو را حجیر حالا حجیر مجبور پرت فگه دیگه چون رستم اونجاست و این میخواد پنهان بکنه بنابراین جواب سربالا جواب نامعقول میده و سهراب متوجه میشه که این جواب جواب درست نیست چون این داد پاسخ مرور راهجیر که شاید بودن کان گوه شیرگیر کنون رفته باشد به زابلستان که هنگام است بر گلستان میگه که الان زابلستان آب و هوا خوبه و گلستان خوبه و فصل گل شاید رفته باشه اونجا بدو گفت سهراب کین خود مگوی که دارد سپهبت سوی جنگ روی به رامش نشیند جهان پهلوان بر این بر بخندند پیر و جوان این چه حرفی میزنی وقتی که پادشاه رو به سوی جنگ داره میره اگر پهلوان بره سراغ بزمارایشو بشینه به رامش پیر و جوان به اون میخندند مرا با تو امروز پیمان یکیست بگوییم و گفتار ما اندکیست اگر پهلوان را دیگه مقصودش رو آشکار می اگر پهلوان را نمایی به من سرف راز باشی به هر انجامه تو را بی دهم هم در جهان وگرداری وگر داری این راز را در نهان سرت را نخواهد همی تن به جای میانجی کن اکنون بدین هر دو را میگه که اگر پهلوانو به من نشون بدی سرفراز هستی و به تو بینیازی میدم، ولی اگر این راز رو پنهان کنی دیگه سریع و روشن میگه مثل این است که سرت به تنت زیادی میکنه و تنت نمیخواد سرش به جای خود باشه حالا خودت ببین هر کدوم از این دو تا رعی رو میخوای انتخاب نبینی که موبت به خسروب چه گفت به دانگه که بگشاد راز از نهوف سخن گفت ناگفته چون گوهر است کجا ناگشاده به سنگندر است چون از بند و پیوند یا ودرها درخشند مهری و باباها میگه نشدیدی که فردوسی در بسیاری موارد خیلی زیاد در طول شاهنامه تمثیل میاره یعنی مثالهایی میزنه در تایید گفته خودش یا گفته پهلوانانش مثل همینجا میگه که نمیدونی که موبت چی گفت گفت سخن ناگفته مثل است که توی معدن گشوده نشده و در دل سنگ هست وقتی که از بند و پیوند رها بشه و بیاد بیرون اون وقت مهر ای از اون می سازند که بابا هاست بنابراین تو هم سخن رو باید از زندان راز بیرون بیاری چون این داد پاسخ هجیرش شاه چو سیر آمد از تخت و مهر و گلاه نبرد کسی جویدن در جهان که از عبر باداردی در دمان کسی را که رستم بود هم نبرد سرش زاسمان اندر آید بگرد هماورد او بر زمین پیل نیست چو گرد پی رخش او نیل نیست تنش زور دارد به صد زور من سرش است از درخت بلند چون او خشم میگیرد به روز نبرد چه هم رزم او زنده و چه مرد نخواهم که با او به صحرا بود هم آورد اگر کوه خارا بوبد میگوید که رستم خیلی اگر کسی از زندگیش سیر میشه میاد با رستم همآوردی بکنه و جنگ او رو به طلبه که اگر سرش به با آسمان باشه او رو پایین میاره و وقتی که در روز نبرد خشم میگیره جند پیل و انسان در برابرش یکی است هست که میگویند که همکار همکار رو تونه ببینه چند جا اتفاق در شاهنامه که وقتی یک کسی وصفی کرده از پهلوانی رستم اون حریف اگر خودش هم پهلوان درجه اول بوده مثل سهراب و مثل اسفندیار بهشون پر میخورده، خورده و می که تو پهلوانی ندیدی داری اینقدر اقرام میکنی. اینجا سهراب هم همینطور میکه اسفندیار هم در داستان رستم و اسفندیار به پسرش بهمن همینطور میکه دو گفت سهراب یعنی به حجیر گفت دو گفت سهراب از آزادگان سیه بخت گودرز کشف آدگان. کجا چون تو را خواند باید پسر بدین زور و این دانش و این هنر میگه چه بدبخت است گودرز که باید تو رو پسر خودش بدونه با این زور و با این دانش و با این هنری که داری تو مردان جنگی کجا دیده ای که بانگ پی اسب نشنیده ای که چندین زرستم سخن سخون بایدت زبان بر ستودنش بگشایدت از آتش تو را بیم چندان بود که دریا آرام و خندان بود چو دریای سبز اندر ز زجای ندارد دم آتش تیز پای سر تیرگی اندر آید به خواب چو تیغ از میان برکشد آفتاب اگر خاطر دوستان باشه یه بار هم رستم همین رو گفت در مورد سهراب که اگر او آتش باشه وقتی که دریای سبز از جا در بیاد طاقت نداره و تاب نداره ولی حجیر اینجا استدلال خودش رو میگه و فکر خودش رو میگه و بنده اینه میخونه میفرمد که به دل گفت ناکار دیده هجیر هجیرم آدم مجرب پرتجربهی نبوده طبعا جوانی بوده به دل گفت ناکار دیده هجیر که گرمن نشان گوه شیرگیر بگویم بدین ترکه بازور دست چون این یال و این خسروانی نشست زلشکر کند جنگجو یا برانگیزد این باره پیلتن بدین کتف و نیروی و این یال او شود کشته رستم به چنگال او وزیران نباشد کسی کین بگیرد سر تخت کاووس شاه چون این گفت موبت که مردن به نام به از زنده دشپن به اگر من شوم کشته بر دست اوی نگردد زیه روز چون آب جوی چون گودرز و هفتاد پور گزین همه پهلوانان با آفرین نباشد به ایران تن من مباد. چونین دارم از موبد پاک یاد که چون برکنند از چمن بیخ سرف سزدگرگیه را نبوید تذر اینجا در زم مطلب کاملا روشنه ولی یک بیت بسیار بسیار معروفی که به صورت شعار در آمده و همه هم بکار میبرن و ظاهرا این در دوران پهلوی اول هم این بیت ساخته شده و سر زبان ها افتاده به نام بیت فردوسی همه ای ایرانیان هم او رو از حفظ دارن ارز کنم که چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده یک تن مباد بخش اولش البته درست هاکی از کمال وطن پرستی است که اگر ایران نباشه تن منم میخوام نباشه اما بخش دوم اصلا معقول نیست چطور بدین بومو بر زنده یک تن مباد یعنی اصلا ایران به کلی از سکنه توهی بشه این سرزمین این خاک که ارزش نداره ارزش خاک به واسطه وجود فرزندان است که روی اون خاک تربیت شدن اینا یک کدوم نباشن خب اگر ایران نباشه فرزندانش باشن میتونن ایران رو مستخلص کنن چنان که کردن به خیلی دقت و توجه در ساختن این شعر نشده بعد هم سر زبونا افتاده همینطور رفته در حالی که اصلش این است که اینجاست یه بیت دیگرش هم بسیار معروفه همونی که اول هست میگه که این گفت موبت که مردن به نام به از زنده دشمن به تو شاد کام بعد میگه اگه من به دست سهراب کشته بشم طوری نمیشه روز ایرانیان سیاه نمیشه ولی اگر گودرز و هفتاد پور گزینش و همه پهلوانان دریان نباشند خب منم سرشون نباشم و دیگه به دین بوم ورزنده یکتن مباد نیست پشتش پشتش میگه این نکتر رو من از موبت شنیدم. بیتو دوباره بیتار دوباره میخونم میفرماید که اگر من چوم کشته بر دست اوی نگردد سیه روزه چون آب جوی. چو گودرز و هفتاد پور گزین همه پهلوانان با آفرین نباشد به ایران تن من مباد چون این دارم از موبت پاک یاد که چون برکنند از چمن بیخ سرف گیا را نبوید تزن این فکر را با خودش میکنه بعد به سهراب گفت این چه آشفتن است همه با من از رستمت گفتن است چقدر دلش نمیکنی رستم رو همین پیلتن را به خواهی شکست تو او را تناسان نیاری به دست و این آسونی او به دست نمیاد که فکر کنی او رو شکست طبیعی است که سهرابم خوشش نمیاد برمیگرده و ناراحته به دلیل اینکه شب آمدن تو اردوگاه او و زند رو کشتن و رفتن بشنید گفتارهای درشت از او روی برگاشت بنمود پشت بپوشید خفتان و برسر نهاد یکی ترگ رومی به کردار باد ز تندی به جوش آمدش خون برگ نشست از بر باره تیز تک خروشید و بگرف نیزه به دست به آورگه رفت چون تیلم است از آنجا دمان شد به پرده سرای به نیزه در آورد ز جا رمیدان دلاور سپاه دلیر به کردار گورانز چنگال شیر رفت به طرف سپاه ایران و با نیزه یکی از این سراپرده ها انداخت البته تسریح نمیکنند که کدومش ولی ایرانیان همه رمیدن و در رفتن رمیدان دلاور سپاه دلیر به کردار گورانز چنگال شیر کس از نامداران ایران سپاه نیارست کردن به دودر نگاه این کسی چپ نتونست بهش نگاه ز پای و رکیب و ز دست و انان ز بازوی و آن آبداد سنان بزن دلیران شدند جمعن بگفتند کینت گوه پیلتن نشاید نگه کردن آسان بدوی، دوی که یارت شدن پیش اون جنگ جوی یارت از یارستنه یعنی جرعت کردن از آنجا خروشید سهراب گرد همین شاه کابوس را برش مرد یکی از معانی برش انتقاد کردن و عیب جستن و عیب گویی و بدگویی از کسیست انتقادی هم که داره این است که تو شب میفرستی کسی رو سپاه من سرداران منو بکوشه. از آنجا خوروشید صحراب گرد همین شاه کابوس را برش مرد چون این گفت که شاه پر دار و برد دار و برد در حقیقت اسم اون سرنیزه ها و وسایلی بوده است که مردم را ممانعت می از اینکه بیان جلو و خودشون رو به شاه نزدیک بکنن اون چیزها رو می گفتن دار... یعنی شاه پر تشریفات چون این گفت که شاه پر دار و برد چگونه است کارت به دشت نبرد گاله وزه چطوره؟ چرا کرده این نام کابوس کی که با جنگ نه پای داری نه پی اسم خود تویشتی کاووس اصلا در جنگ هیچ مقاومت نداری بدین نیزه جان تو بریان کنم ستاره همه بر تو گریان کنم یکی سخت سوگند خوردم به بز بدان شب کجا کشته شد زندره است، که از ایران نمانم یکی نیزه دار کنم زنده کاووس کی را بدار کرا داری از لشکرت جنگ جوی که پیش من آید کند روی روی میگه جنگ جوکی داری که بیاد پیش من و رو در روی هم بیستیم بگفت و همی بود جوشان بسی از ایران ندادند پاسخ کسی خم آورد پشت و زد دستان ستیخ بزد تند و برکند هشتاد میخ یه خورده خم شد و با دستش اون سر ستیق یعنی قله سر اون سراپرده رو زد تند و هشتاد تا میخ سراپرده کابوس کنده شد خماورد پشت و زدستان ستیخ بزد تند و برکند هشتاد میخ سراپرده یک بهره آمد ز پای. یه قسمت سراپرده پادشاهی سرنگون شد زهر سو بر آمد دم کرنای. کمی گشت کابوس و آواز داد که ای نامداران داران فرخ نژاد، یکی نزد رستم برید آگهی که از این ترک شد مغز گردان توهی ندارم سواری را هم نبرد از ایران نیارد کسیم کار کرد فریاد کرد که یکی بره به رستم بگه آقا ما هم نبرد این جوان ترک رو نداریم بیا رستم و به داد برس که ببینیم جلوش بگیریم. بشو توس و پیغام کاووس برد شنیده سخونها به دو برشم. چونین گفتستتم که هر شهریار که گرد... که کرد... چونین گفت رستم که هر شهریار که کردی مرا ناگهان خواستار، گهی رزم بودی گهی ساز بزم ندیدم ز کاووس جز رنج رزم میگه هر پادچایی که منو میخواست گاهی برای جنگ میخواست گاهی هم برای بزم میخواست ولی از وقتی کاووس پادشا شده هر وقت منو خواسته چیزی جز رنج رزم و نبرد نبوده بفرمود تا رخش را زین کنند سواران بر اوها پر از چین کنند ز خیمه نگه کرد رستم به دشت ز ره گیو را دید کندر گذشت نهاد از بر رخش رخشنده زین همی گفت گرگین که بش هین همی بست با لرزه روهام تنگ به برگستوان در زده توس چنگ روهامم یکی از پسرای گودرزه میگه اینا همه تناشون میلرزید گیب که در رفت و روهامم با لرزش داشت تنگ اسبشو این بست و توسم چسبیده بود به برگستوان یعنی زره اسب یا فیل همی این بدان آن بدین گفت زود زود باش تهمتن چو از خیمه آوا شنود به دل گفت ک این رزم آهرمن است نه این رست خیز از پی یک تن است میگه مثل اینکه با اهریمن باید جنگ کنیم این سر و صدا برای یک نفر آدم بزد دست و پوشی ببر بیان ببستان کیانی کمر بر میان نشست از بر رخش و برداشت راه زواره نگهبان رخت و سپاه زواره برادر رستمه و هر وقت که رستم به جنگ میره و بیمی بوده است که مبادا چشم زخمی ببینه به زواره سفارش میکرده که سپاه سیستان چه بکنه و چه جور اداره بکنه و کجای بود اینجا میگه که نگهبان رخت و سپاهش بود به دو گفت به زواره. به دو گفت از ایدر من رو پیشتر گفت از اینجا جلوتر نیا به من دار گوش از گلان بیشتر گوش به من دار یعنی به من توجه داشته باش البته صدایی نیست این گوش داشتن به معنی مواظبت کردن و مراقبت کردن حافظ می که دل زناب و که چشمش گوش داشتم لیکن ابروی کماندارش میبرد به پیشانی گوش داشتن و محافظت کردنه میگه من دل از ناوک چشم او محافظت کردم ولی ابروی کماندارش با پرروی پیشانی کردنم و عنی پرروی کردن و فقاحت کردنه میگه ابروی کماندارش به پیشانی یعنی با پرروی دل من برد و هر حال گوش داشتن و مراقب بودن و موازب بودن. به دو گفت از این در مراو پیشتر به من دارگوش از یلان بیشتر درفشش ببردند با او به هم همی پرخاش جوی و دوشم چو سهراب را دید با یال و شاخ برش یعنی سینش و پهلوش برش چون بر سام جنگی فراخ به دو گفت از در به یک سو شویم به آوردگاهی بیاهو شویم گفت که بیا بریم یه طرف دیگه در یه جایی که خودمون دوتا جنگ بکنیم هم آورد تو در حقیقت من بمالید به مالید را به کف به آورد گه رفت از پیش صف رفت به میدون از جلو صف رفت برستم چون این گفت رو تا رویم از این هر به یک سو شویم زلشگر نخواهیم ما یار کس که من باشم و تو در آورد بست آورد به معنی جنگ و نبرده به آورد گهبر مرا جای نیست تو را خود به یک مشتمن پای نیست میگه من در آوردگاه در میدون جنگ خیلی نخواهم ایستاد بران که تو یه مشتمن رو نمیتونی تحمل کنی به بالا بلندی و با شاخ و یال میگه قدت بلنده و اندام پهلوانی هم داری ولی ستم یافت یالت زه بسیار سال میگه چون سالها ور تو گذشته یالت یعنی گردنت یعنی زور پهلوانیت کم شده خلاصه پیری و من جوانم نگه کرد رستم بدان سرفراز بدان برز بالا رکیب دراز به دو گفت نرم ای جوان مرد نرم زمین سرد و خشک و سخون چرب و گرب به پیری بسی دیدم آوردگاه بسی بر زمین پست کردم سپاه تبه شد بسی دیو در چنگ من ندیدم بر آن سو که بودم شکن نگه کن مرا تا ببینی به جنگ اگر زنده ماندی مترس ما از نهنگ میگه منو در جنگ ببین اگر با من جنگ کردی و زنده موندی دیگه از نهنگم نترس مرا دید در جنگ دریا و کوه که با نامداران توران گروه چه کردم ستاره گوای من است به مردی جهان زیر پای من است چه آمد زرستم چون این گفته گوی به سهراب را دل بروی مهرش به چون جنبید به دو گفت که از تو بپرسم سخون همه راستی باید افکند بون منیدون گمانم که تو رستمی گر از تخمه نام بر نیرمی اگر به من یاست و اینم میگه به همون دلیلی که حجیر یعنی رستم معرفی نکرده بود رستم هم از معرفی خودش خودداری میکنه بدو گفت از تو بپرسم سخون همه راستی باید افکند بون منیدون گمانم که تو رستمی گر از تخمه نام بر نگرمی یا از نجات نریمانی چون این داد پاسخ که رستم نیم هم از تخمه سام نگرم نیم که او پهلوان است و من کهترم سعی میکنه افسانه رستم بازم بزرگ کنه که او پهلوان است و من کهترم نه با تخت و کام و نه با افسرم از امید از امید سهراب شد ناامید و رو تیره شد روی روز سفید به آوردگه رفت نیزه به کفت کفت همون کتفه بسیار در شانهام فردوسی کفت آمده به جای کتف به آوردگه رفت نیزه به کفت همین ماند از گفت مادر شگفت نشونی های مادر همه میدید می در این سوار ولی خب این میگه من رستم نیستم و تعجب می یکی تنگ میدان فرو ساختند به کوتاه نیزه همی باختند نیزه های کوتاه به کار بردند نموندیچ با نیزه بند و سنان به چپ باز بردند هر دو اینان نیزه ها سنانش از بین رفت بندش از بین رفت همش داغون شد خرد شد و بعد آمدند سراغ شمشیر زدن به چپ اینانشون رو به چپ گردوندند و فرگشتن به شمشیر هر دو براویختند همی زاهن آتش فرو ریختن به زخمن تیغ شد ریز ریز چه زخمی که پیدا کند رست خیز که قیامت وجود میابود گرفتند از آن پس عمود گران گرز قمی گشت بازوی گنداوران. ز نیرو عمود اندر آورد خم گرزا دستش کج شد ز نیرو عمود اندر آورد خم دمان باد پایان و گردان دو جم. از اسپان فرو ریخت بر گستوان. زره اسب همه پاره پاره شد از اسپان فرو ریخت بر گستوان زره پاره شد بر میان گوان فرو ماند عصب دلاور سوار یکی را نبود دست و بازو به کار خسته شدن هر دو تن از خوی پراب و همه کام خاک زبان گشته از تشنگی چاک چاک خوی یعنی عرق تنشون از عرق پر آب بود دهنشون پر خاک بود از گرد و خاک میدان جنگ زبانشون هم از تشنگی چاک چاک شده بود یک از دیگران ایستادن دور پر از رنج باب و پر از تاب پور خسته ایستادن هر دور از هم اینجا فردوسی مجالی پیدا میکنه که خودش حرف بزنم شگفت شگفتا که کردار توست هم از تو شکسته هم از تو درست از این دو یکی را نجنبید مهر خرد دور بود مهر موکچه چه همی بچه را باز داند سطور چه ماهی به دریا چه در دشت گور نداند همی مردم از رنج و آز نداند همی مردم از رنج آز یکی دشمنی را ز فرزند باز حالا رستم پیش خودش این طور فکر میکنه همی گفت رستم که هرگز نهنگ نه ندیدم به که آید به جنگ مرا خار شد رزم دیو سپید ز مردی شد امروز دل ناامید جوانی چون این پرده جهان نه گردی نه ناماوری از مهان به سیری رسانیدم از روزگار دلشگر نظاره بر این کارزار چون آسوده شد بازوی هر دو مرد از آورد و از رنج ننگ و نبرد به زهبر نهادند هر دو کمان جوانه همان سال خورده همان زره بود و خفتان و ببر بیان ز کلک و ز پیکان نبودش زیان کلک اصلا به معنی نیه الان به قلم به کار میره ولی خب قلم هم از نیه بوده کلک معنی نیه که برای تیر به کار میبردن میگه که زره بود و خفتان بود و رستم که خفتانش ببر بیان بود اینا تیر و اینا بهش کار نمیکرد زره بود و خفتان و ببر بیانز کلکوز پیکان نبودش زیان غمی شد دل هر دو از یک دیگر گرفتند از آن پس دوال کمر تهمتن که گرد دست بردی به سنگ بکندی ز کوه سیه روز جنگ کمربند سهراب را چاره کرد که در زین بجنباندش در نبرد کمربند سهراب را چاره کرد که در زین به جنبان در نبرد میان جوان را نبود آگهی من از هنر دست رستم توهی میگه رستمی که سنگ و از کوه میکند در روز جنگ دست انداخت به کمر سهراب که او را از زین بجنبانه ولی اصلا سهراب عین خیالش نبود هیچ به فکرش نبود دو شیروبجن از جنگ سیر آمدن همین خسته و گشته دیر آمدن دگر بار سهراب گرز گران زید برکشید و بیافشاردران بزد سخت و آورد کتفش به درد کت بپیچید و درد از دلیری بخرد درد و تحمل کرد بخندید سهراب و ای سوار به زخم دلیران نهی پایدار. به درون رخش گوی خر این اسبت مثل خر میمونه دو دست سوارش چون نی بی است اگر چه گوی سر بالا بود جوانی کند پیر کانا بود میگه با اینکه هیکل خوب داری اینا ولی پیری که بخواد جوانی بکنه این از ابلهی است کانا به معنی نادانه میگه پیری که جوانی بکنه از کانا از نادانی به مستی رسیدین از آن آن از این. مستی به معنی زاری و ناراحتیه و مستمند از همینه یعنی کسی که گرفتار مستی است مستی یعنی ناله و زاری به مستی رسیدین از آن آن از این چنان تنگ شد بر دل ایران زمین که از یکدیگر روی برگاشتند دلوجان و جان و اندوه بگذاشتند هم‌تن به توران سپه شد به جنگ به دانسان که نخ بیند پلنگ به ایران سپه رفت سهراب گرد انان باره تیزتک را سپرد. از هم جدا شدن با خستگی فقولاده و با ناراحتی رستم رفت به طرف سپاه توران که مقداری از اینا بکشه تلافی این خستگی فقولاداش در بیاره سهرابم آمد به طرف سپاه ایران میان سپاه میان سپاه اندر آمد چو گرگ پراکنده گشتان سپاق بزرگ رستم یه دفعه شستش خبردار میشه که نکنه این الان بره به سراغ پادشاه و پادشاه را از بین ببره دل رستم اندیشه ای کرد بعد که کابوس را بیگمان بعد رسد از این پرهنر ترک نوخواسته به خفتان برو بازو آراسته به لشگرگه خیش تازید زود که اندیشه دل برانگونه بود میان سپه دید سهراب را چومی لعل کرده به خون آب را سر نیزه پرخون و خفتان و دست یعنی همه اینا خونین بود سر نیزه پرخون و خفتان و دست چو شیری که گردد ز نخچیر مست غمی گشت رستم چو او را بدید خروشی چو شیر جان برکشید به دو گفت که تیز و خونخار مرد از ایران سپه جنگ با تو که کرد گفت کی از ایران یا تو جنگ کرده که تو این کار داری میکنی چرا دست با بد پسایی همی پسایی از پسودن پسودن وعنی لمس کردن چرا دست تو به طرف بد میبری بد رو لمس میکنی چرا دست با بد پسایی همی ببخشید چرا دست با بد پسایی همه چو گرگندر آی میان بدو گفت سهراب توران سپاه از این رزم بودند بر بیگناه میگه تو هم رفتی سراغ سپاه توران اونا هم گناهی نداشتند جنگ نکردند تو آهنگ کردی بدیشان نخوست کسی با تو پیکار و کینه نچوست بدو گفت رستم که شد تیره روز چو پیدا کند تیغ گیتی فروز بر این دشت هم دار و هم منبر است روشن جهان زیر تیغ است گریدون که شمشیر با بوی شیر چنین آشنا شد تو هرگز ممیر بگردیم شبگیر با تیغ کین تو رو تا چه خواهد جهان آفرین میگه شبگیر شد وقت گذشت فردا وقتی که گیتی فروز یعنی خورشید تیغ برکشه فردا وقتی گیتی فروز یعنی خورشید تیغ برکشه ما هم میاییم در این دشت هم داره نشان خاری و شکست و هم منبر نشان فتح و روش نه همون روشه روش جهان زیر شمشیره گریدون که شمشیر با بوی شیر چون این آشنا شد تو میگه اگر شمشیر به این ترتیب با بوی شیر آشنا شد تو هیچ نمیر بگردیم شبگیر با تیغ کین تو رو تا چه خواهد جهان آفریم میگه فردا صبح زود شبگیر یعنی صبح زود میایم و میگردیم یعنی جنگ میکنیم با هم با تیغ کین فعلا برو تا ببینیم خدا چه میخواهد